862. خلیفه در حالی که هنوز نتوانسته بود جلوی خنده را بگیرد گفت هرچه تو گفتی عین واقعیت است حق با تو بوده است من وظیفه خود می دانم که آنچه بستر تو آورده ام جبران کنم خدا را گواه می گیرم آنقدر تلافی کنم تا تو قلبا از من خوشنود شوی آنگاه به بانوان دستور داد عادیترین ترین رخت های سلطنتی را به اول پیش کش کنند و بر او بپوشانند پس از که لباس را بر او پوشاندند هارون و رشید جلو آمد و ابوالحسن را در آغوش کشید و گفت ابوالحسن تو برادر منی به من بگو چه میخواهی ابوالحسن پاسخ داد یا امیرالمؤمنین به من بفرمایید بدانم چرا مرا اینگونه به اشتباه انداختید و مرا بازیچهٔ خود قرار دادید برای من بسیار اهمیت دارد بدانم منظورتان از این تفریح بی چه بوده است؟ خلیفه پاسخ داد حتما برایت میگویم اولا من قالب اوقات با لباس مبدل خصوصا هنگام شب در بغداد گردش میکنم تا خودم از نزدیک ناب ها را در مملکت ببینم و ماهی یک بار هم در شهر میگردم و از روی پل عبور میکنم آن شبی که تو مرا به خانه خود دعوت کردی؟ زمین صحبت به من گفتی آرزو داشتی 24 ساعت به جای خلیفه بودی تا پیش نماز مسجد محله و چهار تن شیخ ریاکار را مجازات می کردی. به نظرم رسید که اجای این خواسته تو تفریح بسیاری برای من به همراه خواهد آورد و فکر کردم فوراً آن خوشنودی خاطر را برای تو پیش آورم من همراه خود گردی داشتم که اگر به کسی خوران شود، به خواب عمیقی فرو می‌رود. مقداری از آن را در آخرین جام شراب ریختم و تو به خواب رفتی و به غلام خود هم گفتم تو را به قصد من ببرد و در خانه را هم باز بگذارد بقیه را هم که خودت می‌دانی و یک روز تمام را در مقام خلیفه بودن خوشنود بودی سرانجام باز به دستور من از همان داروی خواب آور به تو خورنده شد و بر روی دوش همان غلام به خانه خودت برگشت داده شدی اما فکر نمی‌کردم که بعدا آن همه رنج و سختی بر تو وارد شود خودت برایم بیان کردی. اما من برای تو احترام بسیاری احساس میکنم و حاضرم تمام رنج‌ها و ناراحتی را که در این راه کشیده ای به بهترین وجهی تلافی کنم که به کلی ی آنها را فراموش کنی. فقط بگو آرزویت کدام است و با از و بدون ملاحظه می توانی خواسته ی دل خودت را به من بگویی. اول پاسخ داد: من از سخاوتمندی و مهربانی خلیفه سپاسگزارم. و هیچ نیازی ندارم فقط از امیرالمؤمنین میخواهم که اجازه دیدن خلیفه را داشته باشم و تماس شخصی من با امیرالمؤمنین برایم مهمترین آرزو هاست خلیفه از این پاسخ بسیار خوشنود شد و احترامی را که برای ابوالحسن داشت به حد کمال رسید و گفت ابوالحسن تو می‌توانی هر زمان و هر ساعت که مایل باشی مستقیما نزد من بیایی امارتی در قصر سلطنتی برای او احساس داده شد و از نظر مقرری ماهیانه هم خلیفه گفت تو خودت اخیار داری هر زمان هر مبلغ مایل باشی مستقیما از خزانه برداری و نیازی به اجازه من نداری خودت دستور به خزانه دار بده ابوالحسن تنظیم کرد و با تشکر از نزد خلیفه به خانه رفت و به مادرش گفت آنچرا که به تو گفته بودم حقیقت داشت و خواب دیدن نبود آن وقت سخنان خلیفه را برای او تعریف کرد مادر عبالحسن خوشحال شد که خلیفه فرزند او را این همه دوست دارد و برادر خود میداند. داستان خلیفه و او با عبالحسن در سراسر و و تمام شهرهای و نزدیک منتشر گردید و مردم به طور کامل از آنچه گذشته بود آگاهی یافتند پیوند دوستی عبالحسن با خلیفه هارون رشید به طوری استوار گردید که خلیفه شیفته گفتار و رفتار او گشته و هر کجا می رفت ابوالحسن باید با او می بود. مواقعی هم که به دیدن ملک زبیده، همسر قانونی خود می رفت ابوالحسن در کنار او بود و ملکی هم از و گفتار شیرین و بیریای او لذت می‌برد. به ویژه که خلیفه هارون و رشید شرح کامل تفریح خود را با او برای زبیده بیان کرده بود. زبیده متوجه شده بود هر زمان که ابوالحسن به دیدن او میآید چشم از صورت ندیمه مخصوص او نزحت زمان یا شادی زمان بر نمی گیرد زبیده موضوع را با هارون رشید در میان گذاشت و گفت وقتی هم که ابوالحسن به نزحت و زمان نگاه می کند گونه های نزحت هم سرخ می گردد حدث آن دو یکدیگر را دوست دارند خلیفه گفت چه بهتر از این من پیش از این درباره ازدواج با ابوالحسن صحبت کرده بودم او می گفت که اگر زن دلخواه خود را بیابد ازدواج خواهد کرد و فراموش کردم در این باره با شما صحبت کنم. حالا هم اگر نزح حتی زمان موافق باشد آن دو را به همسری یکدیگر در میآوریم و چون اکنون خندوی آنها در اینجا حضور دارند رضایت حدو را در این زمینه بشنویم اما حس خود را به پای خریف انداخ و گفت هیچکس به سرت خیف طرلیقهی مرا نمیدانند و من از مرحمت خلیفه سپاس حتی زمان هم که از ابوالحسن خوشش آمده بود، گونه‌هایش از شرم قرمز شد و سکوت اختیار کرد و اطاعت خود را از خلیفه اعلام کرد. با این ترتیب، ابوالحسن و حتی زمان به عقد ازدواج یکدیگر درآمدند و جشن شاهانه در قصد برگزار شد و چندین شبانه روز این مراسم ادامه داشت. خلیفه و مرکز زبیده هدایای گرانبههایی به عروس و داماد دربار هدیه کردند. ابوالحسن و همسرش زندگی آرام و پر را آغاز کردند و زوج بسیار خوشبختی بودند و همواره در کنار یکدیگر به سر می‌بردند و زندگی خوشی را می‌گذراندند تا آنکه بعد از یک سال مباشر آنها خبر داد مبلغ بسیاری هزینه شده است و دیگر پولی باقی نمانده تا او بتواند آذوقه برای خوراک آنها تهیه کند ناچارن حقوق مباشر را از محل فروش هدایایی که گرفته بودند پرداختند و او را مرخص کردند و دیگر روی مراجعه به هارون و رشید یا زبیده برای کمک مالی را نداشتند ابوالحسن نمیخواست از خزانه سلطنتی هم میتونه مستقیم بهرهی گیرد خلاصه در وضع ناگوباری قرار گرفتند ولی نمیخواستند از حضینه روزانه زندگی خود چیزی بخواهند هر این فکر بودند که تدبیری بیاندیشند و از وضع بحرانی موجود رهایی یابند ترانجام ابوالحسن به نز زمان پیشنهاد کرد. بهترین راه آن است که به نوبت خود را به مردن بزنیم. اول من میمیرم، یعنی وسط اتاق دراز میکشم و ملافه سفیدی روی خودم میاندازم و دفترم را هم روی صورتم میاندازم. بعد تو مهایی خود را پریشان کن و سر صورت خود را به خراش و نزد زبیده برو و بگو شوهرم را از دست دادم. آن وقت او به تو مقباری پول برای خاک سپاری من و یک پارچه زربفت برای روکش جنازه و یک دست رخت هم به خودت می دهد. زیرا رخت خود را قبلا پاره کرده ای. وقتی آنها را گرفتی نزد من بیا بعدا من هم همین رفتار را با خلیفه خواهم کرد و او هم به همین ترتیب پول خاک سپردن و پارچه زربفت و یک دست رخت هم به من خواهد داد. با این ترتیب برای مدتی به راحتی زندگی خواهیم کرد. نصح زمان با این تر موافقت کرد و گفت که نباید وقت را تلف کرد و فورا رفت و پوشی سفیدی در وسط اتاق پنک کرد و به حسن گفت که روی آن دراز بکشد. قبل هم همین کار را کرد و بعد دفتارش را از سر برداشت و باز کرد روی صورت قبل را با آن پوشانید. آن وقت قبل حسن دستهای خود را به سینه گذاشت و نوزد دستهای او را با پارچه بست و پاهای او را هم رو به قبل کرد. آنگاه موهای خود را به اطراف صورت پریشان کرد و خود را گشود و با فریاد و شیون به سوی قصد ملک زبیده دوید. زبیده که صدای شیون او را شنید از ندیمه خود دلیل آن را پرسید و ندیمه از امارت بیرون آمد و نزهد را سر و سینه زنان دید و فورا به زبیده خبر داد. زبیده فورا از اتاق بیرون آمد و نزهد هم شیون خود را بلندتر کرد و صورت خود را با خراشید، و جلوی زبیده رسید. نوزهد اشکش سرازیر بود و خود را روی پاهای زبیده انداخت. زبیده با بی‌صبری پرسید چه شده است؟ نزهت به جای پاسخ دادن همش آه کشید و های های گریست و گفت بالوی من عمر شما پایدار، ابوالحسن عمرش را به شما داد و من دیو شوهر شدم. نوزهد دوباره به شدت گریه افزود و دوباره روی پای ملک زبیده افتاد و گفت تصور نمی کردم شوهرم که این همه مورد محبت شما و امیرالمؤمنین بود به این زودی از دار دنیا برود و مرا بیکس بگذارد خداوند سایه شما سروران را از سر من کم نکند زبیده بسیار متاثر شد و به یکی از غلامان دستور داد به خزانه برود و یک صد سکه طلا و یک تاق پارچه زر بسیار اعلی بیاورد بلا فورا به خزانه رفت و یک ست طلا و یک تاق پارچه زربفت بسیار اعلی آورد و آن را به نزهت داد و به او گفت زود برو و با این پارچه زربفت روی جنازه شوهرت را بپوشاند و با این پول هم محل آبرومندی را برای خاکسپاری او تهیه کند نزهد دوباره روی پاهای منک افتاد و از او تشکر کرد و به سوی امارت خود مراجعت کرد نزهت به منزل خود بازگشت و ابوالحسن همچنان وسط اتاق بود فوراً با خوشحالی به او گفت بخیز و من دست پر برگشتم و از ملک زبیده را که میخواستم گرفتم اینک نوبت توست که نزد خلیفه بروی و مرگ مرا به آگاهی او برسانی. نوستان زمان هم مانند عبالحسن خود را به مردن زد و عبالحسن هم پارچه سفید روی او کشید و صورتش را هم با پارچه پوشاند و خودش هم دستارش را کج بست به نشانه سوگواری و با گریه و ناله نزد خلیفه رفت خلیفه با وزیر جعفر در اتاق تنها بود ابوالحسن هم که اجازه داشت بدون خبر قبلی وارد اتاق خلیفه شود وارد شد و دستمالی در دست داشت که صورت خود را با آن پوشانده بود و خبر درگذشت همسرش را به آگاهی رساند خلیفه بسیار متاثر شد و گفت مانوس حتی را به تو دادیم که خوشبخت شوی و عمری دراز برای او انتظار داشتیم سپس بی اختیار گریه هارون و رشید سرازی شد و به دستور داد یک ست سکیه تلا و یک تاقه پاشه زربافت زربفت اعلا به ابوالحسن بدهد و بعد به او گفت این پارچه را رو روی جنازه بگذارد و با این پول هم قبل آبرومندی برای همسرت تهیه کن ابوالحسن خلیفه را بوسید و از مرحمت او سپاسگزاری کرد و مرخص شد ابوالحسن خوشحال بود که با این سرعت توانست راهی پیدا کند که به کمک آن از بی رهایی یابد ابوالحسن به نصحت گفت این پول و این هم پارچه ی زربفت و بعد ادامه داد باید نقش خود را خوب ایفا کنیم یعنی هر بیشتر خلیفه و زبیده را گیجو ناراحت کنیم در تایار کار آنها بیشتر خوشحال می‌شوند. و سرانجام به خاطر حیله‌ای که به کار برده این گشاده دستی بیشتری به نشان خواهند داد وقتی خلیفه خبر فوت نوزهد را از ابوالحسن دریافت کرد با وجودی که کارهای بسیار داشت همه را به روز دیگر مکور کرد و برای عرض تسلیت به ملکه و دلجویی از او به خاطر مرگ نزحت یعنی ندیمه اش نزد ملکه رفت و به او گفت من خود را در غم تو شریک میدانم» و خداوند به تو صبر دهد. اما همه بندگان خدا خواهند مرد و تو نباید خود را ناراحت کنی. زیرا بانج که به خود می‌دهی نز... دهی زنده نخواهد شد. من میدانم شما او را خیلی دوست داشتی اما درخواست مرا بپذیر و زندگی را بر خود تخ نکن. این سرنوشت همه بندگان است بالاخره باید زندگی را ادامه داد. ملکه از سخنان خلیفه مفهود شده بود که چرا درباره باره نوزهد و مرگ او صحبت می کند در حالی که ابوالحسن فوت کرده و خبر مرگ او را نوزهد به زبیده داده است سرانجام زبیده گفت یا امیرالمؤمنین، از همدردی شما بسیار ممنونم ولی نوزهد نمرده است و کاملا سالم است و ابوالحسن که مورد توجه خاص شماست فوت کرده من هم از درگذشت او متأثرم و به امیرالمؤمنین تسلیت میگویم و بقای عمر شما را از پروردگار خواهانم خلیفه که خبر مرگ نزحت را ساعتی جلوتر از زبان ابوالحسن شنیده بود و ابوالحسن را کاملا سالم دیده بود نمیتوانست قبول کند که او مرده است و در حالی که میخندید گفت بانوی من چه میگویی ابوالحسن زنده است و خودش با من صحبت کرد و خبر مرگ نزهت را به من داد من هم یک ستکه ی طلا و یک تاق شال زربد برای روی جدازه به او دادم. ملک زبیدی که تصور میکرد خلیفه شوخ اینشان نشان می‌دهد گفت: یا امیرالمؤمنین، حالا چه وقتی مزاح هست من جدی با شما صحبت میکنم و مرگ حسن را با تأثر فراوان به می آگاهیتان میرسانم و شما با من به مزاح می‌گذرانید؟ خلیفه گفت: من اطمینان دارم نصحت به رحمت ایزدی پیوسته و حسن زنده است ملکه از سخنان خلیفه رنجد خاطر شد و گفت تمام ندیمه های من شاهد بودند که نظهب گریه کنان تزد من آمد و ماجرای فوت شوهرش را خبر داد من یک سست که یه طلا و یک تاقش شال زد به او دادم و شما می توانید از سایر ندیمه پرسش کنید که صحبت من این واقعیت است خلیفه در مقابل سخنان ملکه زبیده خندید و گفت این محال است شما می باور کنید می خواهید نکنید در این میانه یک نفر فوت کرده و آن هم نوزحت زمان است زبید فریاد گفت سخنان شما عقیری مرا تغییر نخواهد داد در این هنگام خلیفه حس کرد که زبید تصمیم نمی شود باشی را صدا زد و گفت برو به امارت ابوالحسن و تحقیق کن و ببین ابوالحسن مرده است یا نوزحت و زمان و هرچه زودتر نتیجه را به من اطلاع بده سپس با زبیده شرطبندی کرد اگر زبیده برنده گردد خلیفه باغ شادمانی خود به او بدهد و اگر خلیفه برنده شود زبیده قصر تابلوهای نقاشی را که در دنیا بینظیر است و متعلق به اوست به خلیفه ببخشد هر دو شرط را قبول کردند در همین موقع ابالحسن از پنجره امارت خود به تماشای قصر زبیده نشسته بود که خاجبوشی را دید به سوی عمارت او میآید. فورا فهمید که بین خلیفه و زبیده درباره مرگ او و همسرش اختلاف پدید آمده و خاجبوشی آمده تا از واقعیت امر آگاه شود و به نثات گفت تا خود را مانند نش وسط اتاق بیاندازد. سپس او را پوشاند و دستمان در دست به گریه مشغول شد. خاجبوشی وارد شد و بلافاصله ابوالحسن گفت: دیدی چه بر سرم آمد؟ نوست و زمان همسر عزیزم فوت کرد و مرا تنها گذاشت خوجه در حالی که عشق میریخت به ابوالحسن تسلیت گفت و افزود باید به خواست خدای یگان تسلیم بود نوست و زمان برای من مانند خواهر بود خدا رحمتش کند بعد روی خود را به ابوالحسن کرد و گفت خانمها روی عقیده خود ایستادگی می کنند. مثلا ملک زبیده استال دارد به خلیفه بقبولاند نزحت و زمان زنده است و ابالحسن مرده است و خلیفه هم عکس آن را قبول دارد ابالحسن پاسخ داد خداوند به خلیفه عمر دراز دهد من هرگز خلاف در عرض ایشان نمیگویم خودم خبر تأسفآور مرگ همسرم را به آگاهی خلیفه رساندم و شما هم که با چشمان خود جنازه نزحت را میبینید خاجه باشید با شتاب از اتاق بیرون رفت تا گزارشش را بدهد عبال حسن رو به نزحت کرد و گفت: مطمئنم این بار ملک زبیده یکی از مدینه های خود را خواهد فرستاد زیرا گزارش باشی را باور نمی کند و باید آماده باشیم تا ببینیم چه کسی خواهد آمد. باشی به قصد ملک زبیده مراجعت کرد و گزارش داد: نصحت و زمان فوت کرده و همسر او بر سر نقش او گریه وزاری می کند. خلیفه شنیدن این خبر خوش شد و گفت: خبر خوبی بود آنگاه به زبیده گفت با این ترتیب قصر تابله های نقاشی جهان از این لحظه به بعد متعلق به من خواهد بود ملک زبیدی پاسخ داد به سخنان خاده باشی اعتماد ندارم زیرا من با چشمان خود نوزهند را دیدم که شیون کنان به امارت من آمد و خبر درگذشت همسرش را به من داد همه ندیمه ها هم این گفته را تایید کردند خاجبشی گفت بانوی من من نصحت و زمان را در وسط اتاق دیدم و اطمینان دارم که او مرده است ملک زبیده با خشم فریاد کشید تو ای غلام پست فجت که نمیفهمی چه میگویی الان ثابت میکنم که اشتباه میکنی آنگاه ندیمه سالخوردهی خود را که دایه او هم بود صدا زد و به او ماموریت داد که به امارت عبدالحسن برود و ببیند شوهر مرده یا زن و بدین ترتیب به این گفتگو پایان داده شود. زبیده به دایه گفت چنانچه خبر خوبی بیاوری پاداش خوبی هم دریافت خواهی کرد. عجله کن و زود مراجعت کن. خلیفه خوشدود بود که زبیده را در این حالت میدید و خاجه هم از خشم ملکه نسبت به او بسیار ناراحت شده بود. هنگامی که زبیده دایه خانوم را برای کشف حقیقت فرستاد خوشحال شد. زیرا فکر فهمید دایی خانم هم وقتی باز بازگردد گزارش او را تایید خواهد کرد و با این ترتیب ملک زبیده دوباره با او بر سر لطف خواهد آمد. ابوالحسن که همچنان از پنجره عزا را زیر نظر داشت از دوری که دایی خانم به سوی عمارت آنها در حرکت است. فوری متوجه گردید که عزا از چه قرار است. به حتی زمان گفت دایی خانم و زبیده فرستاده است. تا بداند حقیقت مطلب کدام است فورا عبالحسن خود را به وسط اتاق رسانید، و روی زمین به پشت خوابید و نسحت هم پارتی سفید روی بدن او کشید و عبالحسن هم دستار خود را باز کرد و روی صورتش را با آن پوشانید. وقتی دایی خانم وارد اتاق شد نصحت و زمان را دید که در حال عشق ریختن است و جنازه ابوالحسن هم روی زمین کف اتاق دیده می شود و نوزهت و زمان خود را آشغته کرده و بر سینه خود می کوبد و و سر داده است. دایه یعنی آن بانوی سال خورده سراغ نوزهت و زمان رفت و با اندوه فرابان و چهره غمگین به او تسلیت گفت. و اظهار داشت بسیار متاسفم هم که همسر بسیار عزیزت را از دست دادی. نوزهت گفت ای مادر نازنین، میبینی چه بدبختی به سرم آمد چه آدم بدقبالی هستم شوهر نازنینم را که این همه دوست داشتم خداوند از من گرفت مگر چه گناهی به درگاه خدا کرده بودم که به این زودی آشیانه سعادتم برباد رفت من که همه و عبادت می کردم دای خانون که از دیدن این منظره با حیرت فراوان روبرو شده بود و خلاف سخنان خاجبوشی را میدید با خود گفت عجب قولاو دروغ و حاق بازی است این خاجی سیاه شر نمی کند که بین بانو و سرور من این چنین اختلاف نظریجاد ایجاد می کند و دروغ به این بزرگی می گوید و منکر حقیقت می شود آقا به لذت گفت نگران نباش من واقعیت را به آگاهی بانوی خود و امیرالمؤمنین میرسانم و خواهم گفت که این خاجبوشی سیاه دروغگو است و زمان پاسخ داد ای مادر کاش واقعیت به همان شکلی بود که خاجه باشی به عرض رسانده و من حالا وجود نداشتم که بار سنگین فراق و مرگ همسرم را تحمل کنم در همین لحظه نذحت آنچنان به گریه افتاد که دل دای خانم برای اوسوق و او هم به گریه افتاد دایه لحظه‌ای در کنار جنازه نشست و ملافه روی آن را کمی پس زد و جنازه را نگاه کرد بعد گفت بیشاره عبال حسن آنگاه قدری گریه کرد و گفت دخترم خداوند به تو صبر دهد من باید بروم ملک زبیده در انتظار است خدا نگهدار مذرت میخواهم عجله دارم و شتاب باید بخونم زیر خاجه باشی با دروغ خود ملکه را نگران ساخته زودتر باید بروم و نگرانی او را برطرف سازم این سیاه دروغو حتی سوگر تویاد کرده که تو مرده ای بعد از رفتن دایی خانم نزحت با اجاله ملافه را از روی ابوالحسن برداشت و درست را که روی سینهش بسته بود آزاد کرد و دو نفری در کنار پنجره نشستند و خود را برای جوابگویی پیشامدهای پیش آمدهای آینده آماده می ساختند دایی خانم با شتاب خود را به قصر رساند و منتظر دریافت پاداش شایسته از زبیده بود وقتی به نزد زبیده رسید دیگر از فرط خستگی از نفس افتاده بود. هنگامی که زبیده خبر را شنید از داگی خانم خواست یکبار دیگر آن را برای امیرالمؤمنین مؤمنین تکرار کند. زیرا او تصور می کند یا ما همه ابلهیم یا آن از خدا نمی ترسیم. آنچه را دیدی برای آن سیاه دروغو و خدا نشناس هم بازگو کند که همه را به هم ریخته است. کاجه باشی که تا قبل از بازگشت دایی خانم خیاب میکرد گزارش دایی به او خواهد بود از گزارش دایی خانم ناراحت شد و رو به دایی خانم کرد و گفت پیرزن عجوزه خجالت نمیکشی دروغ به این بزرگی میگویی از خدا نمیترسی من خود با چشفایی خود دیدم جنازه اینوز حتی زمان در وسط اتاق افتاده بود و حتی روی آن را پس دادم و صورتش را هم دیدم. دایی خانون پاسخ داد تو دروغگویی که جارعف می کنی توی روی من پا روی حقیقت بگذاری و بگویی نصحت زمان مرده است در حالی که من خود با او صحبت کردم و به او تسلیت گفتم و جنازه عبارحسن را در وسط اتاق دیدم و گوشه ملافه روی جنازه را قجی برگرداندم و صورتش را دیدم خاجباشی گفت تو آدم شیاد و درویی هستی که میخواهی با دروغ خود همه را به هم بدمین سازی و در حضور سلطان و ملکه و در برابر چشم آنها دروغ میگویی و منکر واقعیت می شوی. من با چشمان خود دیدم نصحت زنده و ابوالحسن مرده بود زبیدی که از رفتار باشی و دای خانوم و مشاجره آنها در حضور او و خریفه ناراحت شده بود با لحنی بسیار تند و کلماتی درشت به دای خانوم نهیب زد بس است به حرمتی موقوف. آنگاه به خلیفه گفت یا امیر باید در مورد این دو نفر که شایسته در نظر بگیرید و از شدت خشب باغذ را گرفت و نایهان به گریه افتاد خلیفه که موضوع را خیلی پیچیده میدید به فکر فرو رفت تا به چگونه باید این اظهارات نازازگار را با همسازش داد و این معما را حل کرد بعد در حالی که زبیده را نگاه میکرد گفت اینطور طور که می بینم از قرار معلوم همه ما دروغ می‌گوییم و سخن من تو، خاجه باشی و دای خانم با واقعیت هم سازش ندارد و هیچ کدام حرف دیگری را باور نداریم. بهتران است که خودمان به اتاق و امارت اول حسن برویم تا واقعیت را دریابیم. آنگاه خلیفه از جا برخواست و ملکه هم به دنبال او. و خاجه باشی هم جلو افتاد تا در را برای آنها بگشاید و به خلیفه رو کرد و گفت یا امیرالمؤمنین چه تصمیم خوبی گرفتید؟ با این ترتیب واقعیت به زودی آشکار خواهد شد و با فاش شدن واقعیت دای خانم خفیف خواهد شد دای خانم که قصد نداشت بیش از این در این ماره صحبت شود به خارج باشی گفت ساکت خاجه سیاه تو خودت خفیف خواهی شد نه من امارت ابوالحسن از امارت ملک زبیده فاصله زیادی داشت اما کاملا مقابل آن قرار گرفته بود به که وقتی خلیفه و زبیده از آن خارج شدند و بانوان حریم هم به دنبال آنها راه افتادند ابوالحسن از پنجره امارت خود همه آنها را دید و نژد گفت حالا چه باید بکنیم کارمانزار شد ملکه و خلیفه با همه ندیمه ها دارند به امارت ما میآیند ابوالحسن پاسخ داد قصه نخور فراموش کردی چه قراری با هم گذاشتیم و گفتیم اگر خلیفه و زبیده هر دو اینجا بیایند باید جنازه هر دوی ما در وسط اتاق موجود باشد یعنی با این ترتیب خلاف گفته های فرستادهی خلیفه و فرستادهی زبیده هر دو را ثابت می و همه کارها درست خواهد شد و نقشه ما با پیروزی انجام خواهد گرفت بنابر این عجل کن هر دو منافقا را به خود پیچیدند و روی زمین دراز کشیدند و ابوالحسن دستار خود را هم روی صورت گستراند و هر کدام هم شال زربخت را هم روی سینه خود جای دادند. خاجباشی که پیشاپیش در حرکت بود در امارت را گشود و خلیفه و زبید دنبال او وارد امارت شدند و از آنچه میدیدند به غرض حیرت کردند که در جای خود خشکشان زد. سرانجام زبید سکوت را شکست در حالی که به خلیفه و خاجه باشی نگاه می گفت وای بر من هر دوی آنها مرده اند. بعد با خود گفت نزهد تو نتوانستی در برابر مرگ همسرت طاقت بیاوری و از قصه دق کردی بیچاره ندینه من نزهد خلیفه گفت ای بانو بهتر است بگویی اول نزهد و زمان فوت کرده و اول حسن نتوانسته است مرگ او را بر خود هموار کند تا نیاورده و از قصه مرده است بنابراین باید قبول کنی که شرط را باخته و با این ترتیب قصد تابله های نقاشی مال من خواهد بود زبیده در پاسخ خلیفه گفت برعکس اول ابوالحسن فوت کرده و نازهت از قصده همسر دوام نیاورده و فوت کرده است و شرط را شما باخته اید در این صورت باغ لذت مال من خواهد بود خلیفه که می دید اختلاف بر سر این است که کدام یک اول فوت کرده است و هنوز نمیتوان روشن کرد کدام یک شعر را بردهاند قدری به خود اندیشید و عاقبت بالای سر هر دو مرده با صدای بلند گفت: به خدای یکتا سوگند یاد می‌کنم که هر کس بتواند به من بگوید کدامیک از این دو اول فوت کرده است، یک هزار سکه ی طلا به او جایزه خواهم داد. هنوز این سخن خلیفه به پایان نرسیده بود که از زیر ملافه ابوالحسن صدایی شنیده شد که می‌گفت: یا امیرالمؤمنین، اول من مردم بعدا نوست و زمان